جوانان عزیز آینده مال شماست افقه ها رو شما باید فتح کنید و فتح خواهید کرد خودتون رو آماده کنید خودتون رو بسازید در این دانشگاه سعی کنید علم را تحقیق را بصیرت را آموزش های رزمی را تکیه می کنم. بر روی آموزش های رزمی در این دانشگاه برای یکایک افراد و همدلله استعدادها خیلی خوبه توانایی خیلی خوبه می کارهای بزرگ رو انجام بدید خودتون رو برای انجام کارهای بزرگ در آینده هایی که انشالله چندون دور نباشد آماده کنید به توفیق الهی روح متحر شهیدان که امروز در این میدان تجلی از ارواح متحر شهیدان مشاهده شد و روح متحر امام بزرگوار ما و ارواح طیبه ائمه اطهار علیهم سلام الله پشتیوان شما خواهند بود و قلب مقدس ولی اسر ارواحنا فدا انشاءالله از شما راضی خواهد بود و راضی باشد و همه شما انشاءالله مشمول دعای آن بزرگوار باشید